اللهم و آقاها سید و رسول الله و آل قیدین و و محسونین و ربزایمت مادا حضاره مجموعین خباقی مرحمه به در در میان کلمات اصحاب مترخیرین شیعه تفصیلی پیدا شده به این که زوافر کتاب و نیست به دفعه تاریخی از بحثی بوده در قدیم که به اصطلاح خودشون در کتب و اصول به حاشیه نصفت دادن اون بحث این بوده که اصولاً قرآن کلمات غیر قابل فهم داره مثلا الفاظی داره که معناش واضح نیست یه چیزی شبیه این مطلب رو به از هشیه نصفت دونه این بس قطعا در ها در دنیای اسلام تبسیم برزی مخارب مودن در این زمانی پیگیوی یعنی این بسی که الان ما انجامیوی پیگیوی اون دست نیست اون بس این بس قطعا این احتمال که مثلا قرآن مخصوم نباشه محکم باشه در مقابل خدا آیات بلسان عرهی مبین این مطرح نباشه درستی که در اصول مطرح بود و اون منجر به این بحث ما شد به این سری بحث ما بحث اصولی از کردن اصطلاح اصول در کلمات خودما به اصول این اطلاح می شد اصول اقاید و اصول فرق حالا ما چون دیگه به اصول عقاید چلام رو به کار می تا اشتباه نشهیم اگه اصول عقاید و اصول فرق پس وقتی بگیم اصول مراد او اصول فرقه و الا غالبا اصول عقائض را هم به اصطلاح اصول می و هفت را تا مدت ها تا یک فتر زمانی در کتب فقهی که نمشته شد در اولش مقدماتی در اصول فقه بود و در اده از کتب فقهی ما مثل و در اولش مقدماتی از اصول عقائض بود بعد اصول فقه بود بعد فقه بود انا گنیت و نوزو این کتابه. صحیح هم خونیتون موضوع الا علم یه اصول دو علم و اصول مرادش اصول احاید و اصول در که نه حرف و هم نشین بحثی که در اصول نه در کلام بحث کلامی محضر شد بحث کتابات مشافه بود اگر از سابر مثل هم مثلا معالم که ما توی بحث کتاب بحث کتابات مشابه. الان هم در کتب و اصول ما کتابات مشافه رو تو بحس آموخاص اوگردم تو بحس آموخاص وحس بحث کتابات مطرحه. این وحس کتابات مشافه, بحث کتابات مشافه، یا یا یا علیلین آمانون شامل میشه از کرد این به اشکال مختلفی در اصول مفتر شد من جمعه تلبی بود که مزون ما آدم در کتب ما این احتمال که مثلا زواهر کتاب داره خصوصیاتی باشه که خصوص مشافهی اونا یکی مخاطر پیغمبر بیدن اونا درد بکنن از این بحث سال معاله منجر شد به تفسیر سال قرآنی و اون اینکه که از زواهر کتابشون دست برداشت از هم گفت زواهر کلام زمنقصه به اقامه حجته سندر خونتر اینه از بحث خطاب مشافهه خارج شد به بحث کلی در زواحه یکی شم این بحث بود که آن اخواری که کرد کنم تا که ما میدونیم برای اولین بار. مرموم ملا محمد امین استرابادی میشونه نگاه داره بعد سال معالم وخاطشه نظره هزار سی و خودهی وخاطشه ملا محمد امین استرابادی به طور مشهور. البته هدف ملا محمد امین استرابادی بحث خطابات مشافهه نبود هدف ایشان اساسا این بود که کلیه ارحاس اصول سهی نیست ایشان هدفش این بود مثلا هدف اصلی ایشان این بود مثلا فرص موارد زواهر شی موارد مبارس پرسنس روی همه ایشان اشکال داشت نحره بحث اصولی ایشون معتقد بود که اون نحوه اصولی که تا اون زمان ایشان در حوزه های شیعه متعارف بود که اصولی که متعارفه در ما بود، بیشتر همون اصول علامه بود یعنی یه مقدار اصول احل سنت مثل مختصر ابن حاجب یا مختصره حاجبی در معالم هم ملاحظه می این که میکنه اونا شایعی بودن که در بوضه های شیعه هم بود و اصول علامه بود که اون هم طبیعتا از اهل سنت گرفته بود ایشون رو بود این مناسبت که اصلا بحث این بود که کلیه اصول از اهل سنت گرفته شده و روی مبانی مب بحث اساساً این بود بچنه شد بحث ما ها بود؟ کلیه اصول از اهل سنت گرفته شده برای مبانی اونهاست لذایشون معترض بود که در کلیه اصول در شیعه راه دیگری ایست مثلا بحث زواهر تنها یکی زواهر بود از کنم بحث دلحاظه اصولی اگر ریشه های خود این بحثو بخانیم توی کتب اصول در مبانسه یا در آموخاس یا در مبانسه کتاب این که تاباطب شاطری رو بجن می‌گویند یا در موارد کتاب یا امو خاص. الان در کتب ما می فرهم که پای کتب اهل شیعه تو هم. شما موارد امو خاص نداریم شما موارد کتاب نداریم در اصول شیعه این راجع به تاریخ اجمالی بحث و یکی از نکاتی که خب طبیعتا یعنی ایشان خیلی که اثردارشون در کتب شیعه بود البته وقتی که ایشان حمله‌های تندش رو علیه این مبنا شروع کرد این به لحاظ تاریخی شیعه خیلی مراجعه به زواهر کتاب نمی کنید با در نظر این حمله تاریخی این شاد دیران بیشترین وقتی که شیعه تمسو که به زواهر کتاب میکنه هم مکتب بغداده مختب دوم در در در دوم بغداده مکتب دوم بغداده هستن در اون تحرین تاریخی از حدود سالهای سی سد شروع میشه تا شار سد تاریخی که اهلام مهم این مکتب هم مخصوصا در که به ظواهر کتاب مثل سید مرتضیه. اما تو بودش شیخ طوسی که جوزعلا مرکز برخورد است مذهب به اون نمضا اینقدر به زواهر آیات تمسک نمیکنه چون شیخ بحث رو جهت تبری خبری خبر مؤخر کرد سعی میکنه به روایات مراجعه بشه اینقدر فقط به آیات اما سید مرتضی بیشتر مثلا و این شکی داره تا در واضح واضحان بشه جاش اینجا اما از زمان علام اول قرن هشتم از کردیم چون علام بحث حجید خبر رو مسلم گرفت و قبول کرد و جا اندا از قرن هشتم تا قرن اول قرن یادده هم که مرحوم ملا محمد این است، اصافا در این مدت در کلمات علمای ما که به قرآن به اندازه اون بعدادیای قدیم نیست چون دیگر خبر وجهت رو دو سب مراجعه میکردن بسید زمینه فقهی فقزه های ما عوض شده بود دقیق بگم به هر حال چون در اصول اهل در تمسک به قرآن به عرحات و ارواح قرآن بود در شیعه اهل سنت خیلی تمسک به قرآن زیاده اینم سابقا توضیح بدی به حدی که انصافا علمی هم نیست اینم من توضیحاش عرض کردم سابقا انصافا از حد علمی خارج ولا کار به اختلافات مكتبی از حد علمی خارج مرحوم مولا محمد امینی برنامه رو به این گذاشت که اصولا کلا این راه درست نیست. عرض کردیم بعد از اینکه آیان مثلا ولی بهبانی و دیگران در اون اخباری همراه کردن چند تا مطلب در این رابطه بزرگ شد. توی این رابطه دو تا مطلب بزرگ شد که در اصول قبل از شیخ، به تو اصول قبل از شیخ است اصول شیخ هم آمده یکیش با عنوان قطع حاصل از غیر کتاب که این بحث شده است یکیش هم عدم حجر ظواهر کتا که از توشیم این دوتا مخلط در کلمات مولاق محمد امین و اخباری ها بین اصولی متاخر خیلی گنده شد و طبعا طبیعتا این طور شد مثلا قطعا اگر از که کتا بستان باشه حجر و مشکلی که در اصول پیدا شد اگر قطعا از قیاس پیدا بشه. از آن روزن هست مطلقا حجر ده از دیره خود روایت هست چه این بحث ما در ساده کردیم در تکرارشو کنیم بحثی که الان هست این بحث از زواهره از کردیم چون مرحوم شیخ هر را آملی میشه از دقیقه روایات رو آورده برای که امان تبرد روایاتی رو که مرحوم شیخ هر را عاملی در اینجا جا آوردن این رو متعرض بشیم تا ببینیم آیا واقعا این مطلب هست نه از کردن ویروزم بحث رو ما مصورا دو بحث داریم یه بحثی که اسمشه اقایدی یا کلامی میگذاریم با اون مرجعیت اهل بیت برای فهم قرآن حالا الله. املا البته از شاگرده های مرموم های برو جردی نرمی کردن که ایشون اگر ما بحث امامت رو با احل شنت مصرح نکنیم من حتی از بردی بزرگان قوم قدام شدم پیشون در در سوال برو جردیش نکنیم غیر از این سالا مشک و بیا مرجعیت علمی اهل سنت رو مثلا اهل بیت رو مطرح نه مسئله خلافت و امامت رو البته من نمیدونم حالا واقعا چون بعضی اون اینکه برام نگفتن خودشون جزء مراجع بزرگانی بودن اند که کردن کرده رحمت الله علیهم اجل احتمال میدونم شاید مراد های برجزی یا چیز دیگه ای بوده یا ایشون برداشت دیگه‌ای داشته این مشکل هست من تعجب از مذهبی الان در میان اهل سنت بحث خلافت و امامت با مرجعیت علمی با هم گره خورده جدا شده نمی واقعیت در به اینه اگر واقعا مروم های ورشووی نظر مبارکشون این بود که ما بحث خلافت رو مطرح نکنیم به جاش مرجعیت علمی اهل بیت مطرح بکنیم و با حدیث ثقلین مرجعیت علمی اهل بیت رو مطرح بکنه اگر نظر ایشان این باشه چون میگن. از بزرگان هم mạch شیعه درسیشون arası داشتن گفتن من بونا چون اصلا که با آوا و آذر آه کتو اهل سنت آشنا نیستن یعنی بعد از انحراف مسئله ولایت و امامت و رسایت که هر یک مفهوم بود خود اون ده سال خلافت تلر کردن مذهبی علمیام درست بکنن مشکل این شد یعنی طبع طبع در دوران میتورا هر ده سال ظالمی که سر میاد هر ده سال حق و غیر میاد سعی میکنه رسانون هم به نقل خودش بگیره این نگره طبیعیه یعنی نگره طبیعی هم نیست نگره واقعی یعنی جوری شده که در ذهنیت و اونها نمیتونین شما مرجعیت علمی امام ساده رو چرا چون حدیثشون سرد شده پس اون از عدیب و ریغا و فلا با این حدیث مخالف بودن اصلا نحقه علمی برکار در با حدیث نهره برخورده آمنه با حدیث نیست اصلا دو نهره هست دو بخصه دو راه جداگانه هست ما بیاییم مرجعیت علمی و علمه رو اثبات بکنیم بدون مسئله امامت و بلایت اونی که ما الان میفهمیم یعنی ما میان اهل سنت حالا اون منصفه منصفه منصفه میشن که تیرازمه میگه امام سادم امامون منعیمت شم و بزرگاه بعضیشون که ابن هبان در کتاب صحیه خودش تعلیل میکنه اولادیشون حدیثیشون رو خراب کردن اما غالبا نوشتن شیعه حالا اینا اندرس این علمش خراب رفت کرده یعنی اونا برتر طرز بیان حالا ادعیشون که الفاظ به مناسب به کار نمن نمیخوام متعرض بشن اونهایی که میان از امام صادق تعریف میکنن میگن خیلی خوب اما اون چی که الان از به دست ما رسیده تلسف شیعه تحریف شده بهلا امام صادق باهم نقدی نمیری صبر ذهنی شون اون خوب خوبش اینه اون این بربرتون قبول بکنی این... نه این رو قبول نمیکنه اینی که الان شیعه میگه شما ما به مرجعیت علمی اهل بیت این افکار شیعه رو قبول نمیکنه روشن شد چی میگم ما بر فرض اون خوب خوبش اینه ابن حبان میگه امام صادق خیلی بزرگ بود، لكن اولاد ایشون خراب کردن، که نسبت به اوراث داشته، والله، اون که خیلی خوب، اما شیعه خراب کردن. شیانه حقو و بجرب محمد نما. لذا ما در بکنیم امام صادق خودشون از تبراد دارن، راستش تو سعی مسلم داره. اصلا در به بخاری تاش ایشون از امام صادق نردن از محمد انصاری. از امام سجاد که بخاری هم داره اما از محمد بخاری نداره. بخاری از امام صادق در تاریخش نام میکنه کنه، تاریخ کبیه. اما توی کتاب صحیحش از امام صادق نداره. لذا بخاری اینی که در ذهن اومیاش که مثلا خطی باشه، خطی در وصاقت امام نداره در جلالت امام. شواهد دیگه‌ای دیگه مثلا من خواستم بحث شبه در یک کتاب رو در یک کتابش نیمونه حلا یه حاله نهایت پس همه حدیث حج حدیثی که در مسلم آمده و در سهار احل سنه حدیثی بسیار طولانی مالکه که تول بده امام صادق از امام باغر ام جابران عبدالله انسانی این چه حدیث معروفیه تقریبا مدار حج در پیش احل سنه اینه حدیث امام صادقه. تقریبا نمی خواهی کل مغزم احکامی که در حج دارن از این حدیث واحده چون حجیس الوداه شهر میره جادر ابن عبدالله حجیس الوداه چی جوری بود ما چه کار کردیم چی وقتیم شما آمدیم تمام خودساز شهرم بود من از داره که با این اصلا مدار کتاب تابه مسلم نقمه میکنه میگه اون خوبه خوبه خوبشونم تازه آخریش اینه اما اگر بخواییم مرجعیت علمی اهلو بیتو با افکاری که ما الان داریم این رو خیلی شیلی مشکریه نه اینکه مشکره قطعا قبولتن مکنه نه اینکه مشکره اما ترجیم از بروا بروجدی بروا بروجدی پذیروفتن شهر شد تویمان مذهب جفری هم در بله از مذاهر نه اینکه اینا مرجع این هم برنا مراجع هم از این بره بیت م علت قهرمانیک از من مطلب را در جلسه خصوصی که با آی برای داشتم، از خود ایشان که برای هر چی خواهم برای ما میذارم چیزی در گفتن ها ورود تو درس بزرگان برای من نرد حالا فرض کنیم چون نوشتن شد در مطالب و در ده از طلابی که در اون وقت در صاحب جوان بودن. من خودم ازای بحثشون در من حالا میگم من دقیقا هم میمی جدی مراد مرمومه چون واقعا من خودم شخصا داره مرمومه روزه احترام خاصه باید خیلی احترام خاص. لذا هستان میمی فهمم مراد جدییشان از این تعریق چیه و بعدش هم حدیث سغله مرژت علمی نیست این حدیث سغله اگر ایش خودشان جدل هم میخواستم بگم ما به اهل سنت بگیم مرژت علمیه مرژت همه جهات مرژت علمی نیست خلافت و ولایت همه جا درش هست نیست که فقط مرجعیت ایلی باشه حالا به هر حال نمیخواستن میخواستم راه اشاره هست یک بحثی هست که ما اینو الان به تابع یعنی طبیعت این بحث رو بحث کلامی قرار میدیم و هم مرجعیت اهل بیت در فهم قرآن و در فهم شریعت و در فهم سنت رسول الله صبوت سنت حدود سنت چند بار عرض کردم این یه بحث که متاسفانه آیان اخباری ها بیشتر این روایات رو یه بحثی دیگه بحث اصولی تمسا که به زواهر الفاظه هم در سلخه تمسا که به اطلاق تمسا که به عموم مثل افو بل افو الله و این دو بحثه این دو بحثه با هم دیگه نباید خلق کرد من در بحثه گذاشتم هم از کردم امروز هم بقیه روایات رو که میخونیم به این جد اشارت از کردیم در این باب سیزده که مظموم ساحب سائل اولند و تمام روایات رو جمع کردن اما تا آی بروژی اگه هم توی جامال احادیث، توی مقدمات یک باب رو آوردن راجی به زباده کتاب خوب بود ایشون این روایت آی اخباری همه اشون بیشتر روایت و ها رو بردن. بیشتر در اونجا اون بر رو آوردن اشون بیشتر رو او اون آقا اون بر رو آوردن علایانه حدیث شماره هفت رسیدی که قال ا از کلم بعض از روایات ما ظاهر و باطن داره بعضیام زهر و گفتم در خط اصلی که کتاب با اون نوشته شده احادیث الف متوسطه رو نمی نوشتن این سرشو چون تو ذهنتون باشید چرا بعضی احادیث مشکل داره مثلا بعضی از رو داره به ذهن کوفه بعضی داره به ظاهر می کوفه چون در اون خط قدیم همون خط اصلی خط کوفی ظاهر و ذهن مثل هم می نوشتن کی ماشه خیلی از شبهات تاریخی ما مثلا افراد ببین اسمش هشام یا هاشمه چون هشام و هاشم مثل هم میادشان چون نقطه روی نبود هیثم هم طبعاً مثل اون میشد هیسم و هشام و هاشم اینه که این بعضی از اسما سه چهار کنده شده یه مقدارش برمیگرده به اون خط قدیمی مثلا حارث بدون نقطه با هر یه جور میادشان بعد awalnya یک فرق گذاشتن که با الفلام باشه یا نباشه بحث بین خارص و هر اما در ظاهر کتابت مثل هم مینوشت این دقت بکنید این منشأ یک مقدار از چون این خط فعلی ما که یک مزیجی از خط کوفی و خط نفتی خط نفتی رو مثل این خطایی که صابرن سیاه خیلی خط شقایق اولیه بود خیلی خط به اندیشی بود خیلی از نویسهای عادی با خط نفتی بوده نوشته های مقدس با خط کوفی بوده چون خط کوفی در اصل همون خط سوریانی است که در مناطق شما متعارف بوده و تورات و خطب مقدس واقع می است چند دفعه من عرض کردم حادثه پیش آمد که این خط به مکم وسیل عوائی نزول قرآن بود البته از سوریه نه آمده از اراق هیرا آمد چیسی درگیر این خط ببرد بود آمد در مکه به وزیاد این منشأ شد که قرآن هم از اوائل با خط کوفی نوشته شد هم خود قرآن هم نامه که دوست نامه خیلی هستیم یه مال زمان رسولله هم این نامه هایی که آن کتاباتی که الان موجوده این ها با خط کوفی نوشته شد در خط کوفی علت متوسط در سالهای سی سر این وزیر معروفی بود از ترکیب این دو خط اینشون خط نسخ رو البته بعد از خصائص خط کوفی به خاطر قداشی که خط کوفی پیدا کرد به خاطر کتابات قرآن در این خط جدید هم موند الان شما در این قران‌های جدید ذالکه رو واظن ذالکه نوشتن. حاضر هزار, هزار نوشتن. بعضی‌ها به خاطر مش مش گذاشتن. ملائکه رو ملکه نوشتن. هم در این قران‌های کلا خط نسخ متوارده. اینا خصائص خط کوفی که بعدش حفظ به دوقات زالکه رو زالکه دیگه زالکه که ما هست این ها از خم اول همین بود و همین جوزه بشته میشین این اساس نازد من میخواستم این کلمه رو بگم که این به طور کلی برای شناخت حدیث رجال متون تاریخی این یک بحث کبرویه یک بحث کلی بعد از نوشته ها دو جور آمده این مال اینه اصلا لحو زهران و بعد لهو ظاهر و باطن مشکل این بود که زهر و اون الف وسط رو الف اول نمی الف وسطو رو... مثلا اصلا نمی اگر... اما الف اول... وسطو نمی کتابت در کتابتشون رسمشون این بود مثل الله الله رو علله می الله نوشتن رحمان هم, هم شما می رحمان نوشتن دوستات رحمان می دم رحمان اما متعارف کتابت خطی اون بوده این حدیث شماره 18 هستن به لحاظه ابی وقتی که در سند هست سند شادش خوشن نیست چون البته چون حسین سعید تو کار هست مرد بزرگی احتمالا شخصیتی باشه الان ما نمیشناسیم من دخ... خیلی دقت بکنید خیلی از احادیث رو که حکم به ضعف میکنه واقعا ضعیفند در حقیقت جهل ما حد دل علم ماست این نشون میده چرا گفتم گفتن حد دل علم با حد دل واقع ختم نکنیم این حد دل علم ما اینه، چون ناها رو مورد بعض از علمای اهل سنت نشون میشن بعضی از افرادی رو که ما حدیثشون قبول نمی‌کنیم تذیه کنیم ممکن است الان در اعلا درجات جنت باشن ما آگاهی نداریم ما میگیم اینو نمی‌شناسیم ما اینو عبیره متو اسمشون نمیدونی کی هسته نمی‌شناسیم چرا بی‌ثباتی و غیر وثاقته حدیث شماره 18 مرحوم شیخ رضوان الله تعالی او علی کلمه ان علی این احادیث تا،, تا جایی که میاد عرض این از کتاب کلینیه به ترتیب از کتاب کلینی برای سال وسائل معظم اولی بار را از کتاب کلینی اول مگه اینکه حدیث از مصدر بیام باشه و انا علی ابن علی بن محمد اجمالا بد میزن بعضی از که به اصطلاح ارسال داره انا آدم ابن اسحا ظاهرا در مثال قوم یعشی علیبوش احتمالا دیگه بزرگوار میشای باشه انا عبدالرزاق بن مهران هم متهمون این اسم رو ما کلا نمی هنال حسین میمون مثل هم ان محمد ابن سالم ان عبی جعفر علیه السلام قال اِن اوناس هم تکلمون فی القرآن بغیر علمه مراد از اوناس در اینجا من عرض کردم عده چون در آخر قرن اول از میانه های قرن اول تا قرن اول بحث های تفسیری خیلی راهش شد بین مسلمان ها من این رو چند بار عرض کردم به لحاظ معارف دینی ما جز اوائل بحث ها و معارف دینی ما دو ساسی این فقه یکی ای هم تفسیره این معارف بعدی بهتها پیدا شد. از همون اهدسه ها و هم بحث فقه و تفریعات فقهی مطلب شد هم بحث های به اصطلاح تفسیری و مخصوصا ادهی از به اصطلاح در مباحث تفسیری اعکاماتین رو اطلاعی که خب خیلی وضع ناجوری داشت مثل خود اکرمه یکی از راه های معروف اهل سنت به ابن عباس اکرم مس، اکرم غلام شده و میگن ابن عباس خیلی باخت کوچکی شده تو دروغ میگه اکرم رأیش رأی خوارج بود از مخالفین امیرالمومنین بود مشکل کاری که پیدا شد این بود این چهره هایی مثل این اینا مرجع تفسیر شدند امثال اکرم و دیدی چه از این قبیل هم تو همین اروه اروهت افن که این مرجع فقیسون از آیشون هم جزو منحرفی نه. علیه یکی عبدالله ما امره من نمخوام وادی این متاسفانه از همون قرن اول یکیش خب چه حدیث چه ابو غوریره مثلا اینا از قرن اول از در جلد سه کتاب یا چار من فراموش نکنم شرح نهن داره لابا یه تسل که اده از صحابه تابعی اینا اصولاً معروف بودن به انحراف و مخالفت و انادشون با امیر صلوات الله سلامه علیه. ان آناس انتقال می‌کنند. در قرآن، علم، مراد از این البته میگن این مطلب درست نیست و اخباری ازش یتیم. اخباریم یعنی اهل نه این اصول و حدیث‌هایی که گفتن این کار را نمی‌کند. مطلب درسته. اهل او سولا من توضیحش از کردم که رارم و مرارم علم جزا کلیات مشکل است خودش علم به معنی وضوحه معنی روشنیه. این وضوح و روشنی معایثه میشه با اون مقدار ظلمتی که باشن راهه یعنی ما علمونی که بیشتر میشه این ظلمتش کم میشه اگر ما بودیم و ظاهر کلمات مثلا منبار نصال علماء عممتی هستن کلمه اممتی اگر نبود علم بود از کلمه مصداق واقعی و حقیقی و تام و تام علم همون علم حق سبحانه و تالاست و لذا چون اون در روایات نمیشه مراد باشه باید برگرده به درجات عالی مثلا علماء اممتی در رضع علماء همون اممان این سه بچینه چون علم اونها مصداق بارزه علم رسول الله مصداق بارزه اگر مخصوصاً این برنامه گذاشه اگر مطلبی در جای آمد که خیلی عظمت داشت اون لفظ رو به خاطر عظمت با نور مصداقه تام بود وقتی بفت علماء و اون علمی که علمه کلیه تو توش جهنیست و حسب نشآت امکانی البته توش جهنیست علمه علمه <تصفح> مثلا چند رو الارج رو من کن یعلم و من قضا اینا در اون رواید اینا دناشون ببین شو این یعلموا که میشه اهل بیت مراد باشه پس باید از علم اهل بیت چه ببینیم اول علم خدا بعد علم اهل بیت چه درش کنی چون یعلمون لزو گفتن این یعلموا باید هم بشه برای علمی که واقعا علم اهل بیت گفتن مراد مشهره ما کلامی مشهده رو نذارید این یعلموا رو درک چون این عظمت این مقام ارجاء اهل بیت عظمت این مقام اختضا میکنه مراد از علم اون علم واضح باشه ولی ازا در مقابل اینها مرمو محقق قومی قایل انسان جواهرم میداره یعنما شامل تقرید هم میشه و ما این توضیح داریم انصافا در مجموعه یه روایات این کجا میتونه تقرید این زور بشه کجا این همون مشکل فقاهت هست و زور فقاه و شمال فقاهی پیشین مثلا تلب ال ایم فرزنه الى کلومان این تلب ال ایم شامل اش تقرید این تلب ال ایم یعنی انسان مقلد کسی رو رسالش نگاه بکنه، علم پیدا بکنه، اون شامل اون نمیشه. اما وقتی گفتید انذرو الاره جل یعلموا چه علم قضاینا، میگن این دیگه شامل مقلد نمیشه. به خاطر عظمت این منصب و این کاله امرگو او نمیشه به علم تقلیدی. این به قرائن، به این امام میخوان ان انوناتن تکلموا فی القران بغیر علم، اما واجبهش کلمه. این علم لنجم را در چون در نش اگر به خاطر نبود نب علم هم که واقعا علمه هست، بقیش توش یک در از جهل داره ولی به خاطر نشده این کار میگه. علم محلببه اون علم کامل این وزاره که ال الله ح و دل یاغول الذي انزل عللی کتاب من حیات و و ناممل کتاب ال عنیغور و ما یه علم و تحویلگو ال الله و راسخون فلعلم یه توضیح راجع را جیوازده براز میشاءالله روزیه بیشتری خواهدامن ال آیه فلمنسوخات من المتشابهات و ناسخات من المحکمات این هم یکی از تفاسیره از کلم در 15 تفسیر در کتاب اهل سنت در مرمون میزان آیه میزان آیه علاقه تواسیر در میزان ایشون یکی از تفاثیری که از همون پدین راجبه محکم و متشابه نرم شده اینه محکم یعنی ناسخ منسوخ هم اینه بحث کردین کلارات چند بار چنین بحث آوردین در میان خود اهل سنت یک مناقشه تدریجی پیدا شده که اصلا ما در قرآن نسخ نداریم در قرآن ها اشتباه نشه نه در شریعت این که یک آیه ناسخ یک آیه باشه در قرآن نداره این خب بحثی ف در علوم قرآن مثل اسمان سیفی مطالعه در, در اونجا داره در علوم قران این بحث آمده مرحوم استادان داره البیانشون نامه های خویشی در البیان مترازم بحث شده ایشون هم تصابقا قبول کرده که ما در قرآن نصخ نداریم حالا این تاریخ این مطلب چون یه مردادی ما سابقا رو نصخ صحبت کردیم دیگه الان جاش اینجا نیست حقیقت نصخ در قرآن چیه و چی جویه و چند اسمه احتیاج وحث دیگهی داره الان یکی از تخاصی برای محکمات شابهه اینه که الان این سند باید کاملا محل خبشه است و قبولش مشکله روایت شماره نونده بله محمد بن محمد که علی بن و این حدیث صحیح. قال والله لقد قالی جعفر ابن محمد. ان الله علی منبیه و اتنزیل و تعبیل. فعلمه رسول الله علیا. ثم وعلمنا حالا ولله هم داره الله هم داره. و رواق و بله بعداصبح نقا ما فی, فی ساعت. خوب بودی رو کامل نکنه حد مییم از حدیث انداخه بر سال و سائل. این من که نفتن من کامل حدیثه ورواه شخ به مناسبتی در جلد هشت تزییح به اصنابی همه احمده همه که داره از کلی نگره شرکت جدیه این هم شماره این هم واجب تعویل و تنزیل و علمه و رسول الله علیه هم از کردم این روایت مبارکه نازره به بحث کلامی است نه نازره به بحث اصولی حدیث شماره دو بیس مذرد میکنم 20 و انهو یعنی از استادش محمد بن احیاء ان عبد الله جعفر احتمالاً همیاری باشه. ان سیاری که ظریف ایشان گفت محمد ابن بکر ان ابو الجارود اینم به حال کلام ان الاسفره بن نواس سرعث ان میر المؤمنین علیه الص با حدیثی انه قال ما من شی تسربونه الا به او در قران فمن اراده ذالکه فليغت علم امن این هم یه بحث معروفی بوده که تمام احکام دینی رو میشه از قرآن استهکا نکبواسه، باشه احکام دینی. فقره امیرمومنین که هرکسی این نمیفهمه، ولی اشعر از من سوال. این به بحث کلامی اشرا. حدیث شماره 21 اصولا رجوع کردن به اطلاعات کتاب جزء اون لایه‌های تفسیری و لایه‌های باطن کتاب نیست که نیازی باشه. جزء امور عرشی اهل الله اینکه اطلاق داره نه جز و امور و ارفی. اگر خدشه هست ولی از راه دیگری بیاد نه از این راه شبا این شبا بعد عرض می کنم شماله بیستویت این علی ابن ان ابن سنان او غیرهی هم ذکر او ابن سنان در این طبقه باید محمد باشه آده کنم قال سر صحبا عبدالله عن القرآن و الفرغان اهما شیعان او شیعان واحد فقال القرآن و جمعه کتاب الفرقان المحكم الواجب العمل به اینم یکی از تفاسیره حالا واسه این بحثاش اینکه اینو نیست اینا رفی به ما نحنفی نداره شماره بعدی بله مرحوم ایشون نوشته عنه و عن مرحوم صاحب وسائل عن النور بن شعی دقت کنید این در کتاب کافی دو بار اومده یکیش این طوره که ایشون نوشته یکیش هم این طوره محمد بن احمد انا الحسين بن سعيد عن نوره بن سويدي عن كاهن سري انا القاسم بن سليمان عن ابي عبد این قاسم خیلی توثیق واضحی نداره اما کتابش به حدی مشهوره قال قال ابي ما غره برج القران بعضه به بعض الا كفر این یکی از روات مشهوره به لحاظ سند یه مقدار مشکل داره به خاطر ناشناخته قاسم بن سليمان دقیقاً واضح نیست و یعنی توثیقش به ثقاتش و یکی هم به لحاظ بحث ماظره بر رجال القرآن برزه برزه الا کفر و رواه و ورقیق المحاسم و رواه و صدوق در معانی تمام برمیگرده به همون حسین سعید قال از صدوق تو محمد ابن الحسن مراد از محمد ابن حسن استاد ایشان و شیخ القومیم فی زمان ابن الرگی معروف به ابن الرگی فقال هو و انیجی بر رجل فی تفسیر آیتن به تفسیر آیتن اخران نه این که مثلا یک آیه رو قرآن رو با قرآن کردن یک معنایی برای یک آیه دیگه یک خوب دفتر بکنید خیلی مضمون نووری دقت نه این که مثلا دید. این آیه رو با اون آیه نگاه بکنیم تفسیر قرآن رو قرآن نه مراد این است که یک آیه ای رو که ظاهر در این معناست یک تفسیر بکنید یک باطنی برایش پیدا بکنید یک آیه دیگه هم پیدا بکنیم بین این دو تا بکنیم یعنی به زیر بناهای دوتا تا آیه نه خود آیه این تفسیری بوده که مرحوم چیزایی نسخه ای که ما داریم نسخه مرحوم های ربانی در ذیلش خال المجلیسی رحمه الله یه عبارت هم از مجلسی در شرح این حدیث وارد شده آیا یاحال اغنکان مفهوم حدیث انصافا خالی از ابهام نیست شده حدیث از خالی از الهام نیست منبع بر قران بعض و بعض چرا کفعه که خیلی واضحه واضحه مشکل سندی هم داره ظاهرم اخزه به ظاهر یک آیه زربال قرآن بعضه و به بعض نیم ظاهرم اینطور حالا مثلا برای نمونه بگم چون من همیشه سعید بنده سید می کنیم مثلا ما در یک آیه اولحم خنزیر داریم در یک آیه خنزیر داریم این بحث شده که تحرین به کل خنزیر خوده یا به لحمه حالا مثلا این بگیم زربال قرآن بعضه و چون یکیش هنوزیه یک آیه دم داریم. زبحم یک آیه دم مصفوها داریم. خونی که ریخته شده. حالا اگر بگیم حمله مطلق بر مغایر این در قرآن بحثال خیر خوندیم. با مثال میخوام بگم این تفسیر به تفسیر نیست. حمله مطلق بر مغایر نرود در کلمات اصولی ما یه امر آورفیز. برتر این ما قبول کردیم حالا برتر. وقتی ما ایده قبول کردی که جا یه جایه جا مطلقه یه جایه مقیده این دو با هم مشکل برقرار بکنه اما در مثل اهل لوازه که آیه دیگه نداره لذا شمول این حدیث مبارک برای مثل اهل الله قبول کرد که توی ذنن مسوهم یا ذن با هم دیگه اختلاف دارن در نسبت به اهل الله که ما آیه دیگه نداره که در قرآن بعضه به بحث بشه صلى الله على <تصفيق> محمد